اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مبایسمون طب المعصومین علیهم الصلاة و السلام بود که پیغمبر اکرم و امام صادق و بقیه معصومین فرمودند استفاده صحیح به مقدار لازم از سیاهدانه برای درمان هر دردی شفا هست علاوه بر درمان سبب میشه که بیماری دیگه برگشت پیدا نکنه درمان به نوع شفا یعنی علاج بدون برگشت بیماری حالا یکی از بیماری شایع در داخل و خارج کشور بحث دردهای مفصلی و مانند او اقسامی از روماتیسم و یا اشخاصی که دارای بیماری مختلف به اضافه دردهای روماتیسمی هستند. حالا یکیش از این کتاب بگم بقیهش هم که حواشیمون رو ستون توضیح میگیم حواشی رو توضیح میدهین طب سنتی عسل محقق توانا سجواد سعادتمن صفحه هشتاد روماتیسم یک فنجان روغن سیاه دانه رو کاملا داغ کرده قبل از خواب به محل درد مالیده شود ماساژ هم خوب میدید و با یک تکه پارچه پشمی وان پیچی نموده استراحت کنید این روش رو تکرار کنید در شب های متوالی این یکی از داروهای کاهش دهنده و درمان کننده دردهای روماتیسم مفصلیه از نظر تخصصی بحث روماتولوجی در کشور جمهوری اسلامی ایران از هر صد هزار نفر هشتاد نفر مبتلا به روماتیسم هستند بیماری روماتیسم شیوعش در کشورهای حاشیه جاده ابریشم بیشتره گرچه بعضی از متخصصین همچون دکتر محمد رضا حاطف متخصص مفاصل و رئیس پنج همایش بین المللی روماتولوژی فرموده روماتیسم درمان قطعی ندارد زیایی گوید درمان انواع روماتیسم ها با داروهای عمومی به نوع درمانهای عمومی اقسام و انواع روماتیزم ها تا 24 چیز گفتم حالا دا یادداشت بفرمایید. یک تمشک با توت فرنگی بخوره. دو میوه گیلاس با آلبالو بخوره با میوه آلبالو سه سبزی تره با تره فرنگی بخوره چهار آب زردک هویج رسمی ها هویج زرد آب زردک با عسل بخوره اصل آبیشن نعنا یا دوست بذاره آب سیب سرخ رسیده مخصوصا آبسیب سرخ معطر لبنانی با اصل در شب بخوره شیشون قوره آب قوره یا رب قوره هفتم، پیاز با سیر بخوره هشتون گلقند یعنی گلبرگ گل سرخ محمدی رو با قند ساییده اگر دیابت داره با اصل طبیعی در کسی که روماتیسم شدیده گلقند رو با سکنجبین بخوره گلقند رو با سکنجبین بخوره این هم شماره هش شماره نه ماهی بخوره فعلا گوشتای قرمز و بقیه گوشتا رو حس میکنه فعلا ماهی میخوره با عسل دهم خرفس رو با تروب سیاه بخوره خرفس با تروب سیاه یازدهم انار رو با آلو بخوره دوازده. میوه طالبی رو با گرمک بخوره سیزده حلو با زردالو چهارده گل میخک دارویی با دم کرده بابا آدم پونزده شیر تازه گاو جوشیده که سرد شده با ماست شیرین کمچر چرب دو تاشو با هم میخوره 16 انگور فرنگی سبز رو با عسل میخوره 17م خانم ها و دخترانی که روماتیسم دارن رازیانه در 24 ساعت دو استکان چای رازیانه میخورن با همون رازیانهاش بجوان بخورن خیلی فواعد داره هیجده آب لیمو ترش تازه رو با پرتقال بخوره خیلی فواد داره مؤمنان حالا یکیش هم بحث روماتیسم نوزده آب پرتقال با خرما بخوره من هر کدوم مواردش فرق می‌کنم من دارم درمان عمومی میگم مثل روماتیسم کسی که کم خونی داره فشارش هم پایین فقر آهنم داره روماتیسم هم داره حالا آب پرتقال با خربوزه هر چهار تا خوب میشه حالا اون درمانای و بعد میگم 20 آب پرتقال با خربوزه یک آب انار شیرین با آب خربوزه 22 گل کلم گل کلم با سیبزمینی 23 مربای بالنگ تورنج مربای بالنگ میخوره بعدش یک کفتس نون خشک میخوره این که تو آیات شیعه هم بود پارسالا تو بحث تورنج توضیح دادم در تبول محصومیه این نان خشک نان خشک تنوری باشه اینم باز تو روایات شیعه بیان کرد بیست و چهار مربای به با آب به با اصل میخوره پرهیز صحیح به مدت دو هفته برای کسانی که روماتیسم دارن یک پرهیز عمومی به مدت دو هفته پروتئین حیوانی نخورد نه گوشت سفید نه گوشت قرمز گفتیم جایش چی بخوره گوشت ماهی سفید یا قزل آلا بدون پوست ولی با عسل بخوره دوم به مدت دو هفته حبوبات نخوره سوم به مدت دو هفته بادام زمینی فندق گردو و بادام درختی نخوره پس پرهیز سعیمون فقط چقدره چارده روزه. به مدت دو هفته یازده چیز هست کسانی که روماتیسم دارن تا آخر عمرشون نباید بخورن یازده چیز نباید بخورن یک قندهای شیمیایی. دو های شیمیایی. سه کافئین زیاد چهار ترانس چربی بالا فقط برای اینا روغن زیتون خوبه که یه قاشق با نهار یه قاشق با شام بخوره ترانس چربی بالا چه حیوانی چه گیایی هر مدل فعلا برایشون خوب نیست پنجان ترانسش هم که بالا باشه برای هیچ وقت خوب نیست مثل روغن جامل مثل موز مثل تعدیب مثل کله پاچه مثل پی و دومبن. نیست خامه سرشیر که خامهی رولت نالنجکی اینا برای هیچ وقت براشون خوب نیست ساخت کردنی تفت دادنی این هم شماره چهار ترانس چربی بالا پنجم جات شیشم احشاء داخلی حیوانات حلال هفت هفتم مسکرات این هم رسی لاتا مثلا مسکرات نخواه نه جامد نه مایه هشت فست فود ها یا غذاهای صنعتی، نهم کنسروها، ها ده کمپوت ها یازده انواع سوس ها. این یازده چیز هیچ وقت نباید کسانی که روماتیسم دارند بخورند حالشون بدتر میشه حالا درمان های خاص اگر بیماری اگر بیماری هم فشار خون دارد و هم بیماری روماتیسم داروشیه هر روز صبح یک حبسیر به جوه بخوره یا قورت بده این داروش درمان خاص دو اگر بیماری کبد چرب دارد و بیماری روماتیسم یعنی هم هپاتیت داره هم روماتیسم داره داروی میمنه هر روز جوشانده یا دم کرده برگ یا پوست سبز گردو به مقدار یک استکان بخوره درمان خاص سوم اگر بیماری فلجی خاص دارد یا شبه فلجیا دارد یا لمسی داره. و همچنین بیماری روماتیسم هم داره داروش چیه؟ جوشانده مخلوط بابونه شیرازی و بابونه گاوچش و مرزنجوش این ستا قاطی شده همون به جوشه یه استکان دو استکان تو 24 ساعت بخوره درمان خاص چهارم اگر بیماری هم کم خونی دارد هم بیماری عفونی سوزاک دارد و هم روماتیسم دارد داروش چیه هر روز یک لیوان آب انگور وسط روز بخوره یک لیوانم آب انگور عصرانه بخوره درمان خاص پنجم اگر بیماری ضعف اعصاب دارد ضعف قلبم داره بیماری روماتیسم هم داره داروش مخلوط گلاب مثلا نصف استکان به اضافه عرق بیدمش نصف استکان به اضافه یه قاشق پلوخوری عسل آویشن نعنا هم تقویت قلبشه هم تقویت احصابشه هم درمان کننده روماتیس ششم شیشم بیماری که کمبود مایه مفصلی داره زانوهاش صدا میکنه صدای زانو داره و یا اگر خانومم هست یا استگیه زودرس، یا استگیه فیزیولوجی دارد درزم روماتیسمم داره حالا این چارتر رو با هم خوب کنیم داروز چیه همون جام جوشانده ی علف هفت بند. 25 تا اس داره تو کتاب های گیاه شناسی یا فرهنگ گیاهان ایران مهندس احمد ماهوان فقط اسم 25 تا رو نمشته هم 25 تا اس داره علف هفت بند هزار بند و عصای چوپان و عصای موسا و همجب بود تا 25 تا اس جوشانده علف هفت دند رسته بیماری های رسته ویتامین های به یک به 6 به نه به دوازه همین تین هست قدرت خدا این هم جوشانده علف هفت بند درمان خاص هفتم اگر بیماری تهوع دارد زعف اعصابم دارد روماتیسم هم دارد اینجا جوشانده سوسنبر آبیشن جوشانده سوسنبر آبیشن مخلوط سبزی سوسنبر با سبزی آبیشن درمان خاص هشتم. اگر بیماری کم خونی دارد عفونت داخلی هم داره روماتیسم هم داره داروش جوشانده آب سیب اصل رجوش کم یا مخلوط آب سیب مخلوط بزنیم بذاریم بهتر گرچه بعضی کتاب ها بود درمان خاص نهم انصدا اگر مریض هم انصداد کبدی دارد هم انصداد قلبی داره منظور انسداد عروقی هم روماتیسم داره داروش دو چیز هر روز دم کرده تخم کرفس بنوشد هر روز مخلوط سکنجبین با آب انار شیرین بخوره این پس بیماری که انصداد کبدی داره انصداد قلبی هم داره روماتیسم هم داره هر روز دم کرده تخم کرفس بنوشه هر روز مخلوط سکنجبین با آب انار شیرین بخوره بین دوتا دارو دوازه ساعت فاصله درمان خاص دهم. اگر بیماری تنبلی کبد دارد و کمکاری کلیه دارد و روماتیسم هم داره داروش یک آب پرتقال دو آب انار سه آب سیب چهار آب زردک پنج آب تروپسیا اینا داروش آب پرتقال، آب انار، آب سیب، آب زردک، آب ترپسیا، هر سه تا بیماریش خوب میشه. هم تنبلی کبد، هم کمکاری کلیه، هم روماتیسمش هر تا خوب میشه. درمان خاص یازدهم. روت... اگر بیماری رطوبت اضافی بدن دارد و روماتیسم و یا تجمع مایات اضافی بافتی داره و روماتیسم داروشی چه مؤمنا یک خورشت ترفس دو سوپ هویج جعفری هویج زردک بزن سوپ هویج جعفری سوم روغن زیتون چهارم عسل استخوذ پنجم گل استخدوس ششم افتیمون هفتم زنجبیل زنجبیل زنجفیل میگم مخصوصا زنجفیل یا زنجبیلی که در اصل پرورده شده باشه اصل بخشیش بیشتر در درمان رطوبات اضافی بدن و تجمع مایات اضافی بافتی و روماتیسم فرست کنید یه بیماری هسته تاشه داره اینم دارواشو درمان خاست دوازده اگر بیماری چربی خون دارد و انزیم های کبدیش هم بالا هست و هم بیماری روماتیسم دارد این پنجتا داروش یک شیوید پلو دو آش گل سرخ سه کدو و با پوستش چهار خرشت کدو حلوایی با رب انار پنج مربای بالنگ با عسل بخورد درمان خاص سیزدهم اگر بیماری تب کلیه دارد و روماتیسم یا سنگ کلیه و کیست کلیه داره و بیماری روماتیسم جاروش پنجتا شیشتا یک تروپسیا دوم برگ چقندر با ران مرق بدون پوست درست کنه بخوره خورشتی سوم آش شلغم چهارم آش آبگوره پنجون جوجه کباب شیشون جوشانده هسته خورمان مطلب چارده هم. در درمان خاص روماتیسم اگر بیمار یوبوسط دارد علاوه بر یوبوسط روماتیسمش هم مزمنه یعنی چندین ساله یا چند دهه ده بیست سال مومنم مثلا روماتیسم پس اگر بیمار یوبوسط مزمن دارد و روماتیسم مزمن دارد بیماری نقرس یا MSU یو رسوب اسید اوریک خون در مفاصل دارد یعنی رسوب بلغم سیاه در مفاصل دارد خونش خیلی ترش و همچنین ممنا فناش هم سپر خرابه اینا به کنایه گفتم یعنی ضعف نعوظ شدید دارد خب بیماری که هر چهار رو داره خب چکا کنیم برای اون دو اولی که یوبوسد داره با روماتیسم مزمن همچنین نقرس داره با ضعف نعوز دو تا دو حالا داروش گلقند با شیره توت حالا ما اینجا این گله گله سارخ محمدیشو پودرشو قاطی شیره توت میکنیم که میخوره یکی دیگه چیه گلغند با سکنجبین داروی دیگه چیه مربا یا شربت انجیر که با شیره توت درست شده چهارم حب سورنجان حب سرنجان. به اندازه نخد داروی دیگه شم چیه؟ قولنجان یا خولنجان که روایات اومده یا خسرو دارو کتابه قدیم اومده به مقدار یک عدس زیر زبونش نگهد حتی در این مورد خاص که هم یوبوسد دارد هم روماتیسم مزمن داره هم نقرس هم زرف نعوز اینجا اون مفاصلش که درگیر شده درد داره ها؟ نیش زنبور نیش زنبور یکی دو تا سه تا چهار حالا بستگی داره بیماریش چجوره ولی یک احتیاط داره به شرط اینکه مریض حساسیت نداشته باشه به نیش زنبور. یعنی دو چهار شکه آنافیانک نشه. به کل بدنش پفله بزنه اینا سود بر آرژانسون ا میمیره. اگر مریض ما که این چهارت بیماری دش اگر حساسیت به شکه آننافیلاک نداره. حالا یکی از این درمان های پنشیشگانه چیه مومن در این بیمار خاص نیش زنبور در اون مفصل که روماتیسمیه میه میزنین درمان میشه نه اینکه مسکن باشه درمان میشه این مال این مطلب اگر مومن کسی در مناطق حاره و گرم سیر باشد این نیش زنبور در مفصل و همچنین خوردن حب سورنجان و قولنجان اثر بخشیش بیشتر در این بیماره خاص چارده که توضیح دادم همچنین در این شماره چارده که یوبوسط با روماتیسم مزمن دوش که نقرس هم ضعف زعف نعوز اینجا مربای به، مربای بالنگ مربای شقاقل بسیار براش مفیده که مربای شقاقلشو با عسل آمیشد نعنا بخوره درمان خاص پندها اگر مریضی روماتیسم کهنه و مزمن دارد نبایستی کشک نبایستی کشک سرکه و ترشیجات بخورد ای رو نباید بخوره کسی که روماتیسم کهنه و مزمن داره نبایستی کشک سرکه و ترشیجات بخوره حالا داروش چیه سیر خورده شده یا سیر له شده روی موضع درد روماتیسمی کهنه گذاشته به مدت یک ساعت سپس میشویم روماتیسم مزمن را از بین میبره این هم درمان های خاص روماتیسم اون درمان های دوگانه به نوع داروی مرکبه اسمیه اول و توضیح دادم 24 تا داروی عمومی در درمان کل روماتیسم ها ولی به نوع یک داروی عمومی همگانی آلو بخارا هف عدد انار شیرین آبش یک استکان یا یک قاشق پلوخوری رو به انار شیر مجاورتی این زرشک خام یک قاشق پلوخوری این هم داروی عمومی درمان کننده یا کمک به درمانه تمامی اقسام روماتیسم ها خواستم قابل عرض پزشکی جدید در داخل و خارج کشور. مطالبی گفته باشم که بعضی‌هاشون فرمودن درمان قطعی نداره حالا بهتون برنخوره خب برین یاد بگیریم حالا مؤمنان بعضی بیماری‌های خاص هست که یک قسم روماتیسم در داخل و خارج کشور زیاد سوال میکنن و اون اسمش بیماری بهجت اینم یادگاری بنویسید بیماری بهجت یک نوع روماتیسم می باشد و علائمی دارد علائم بیماری بهجت یک آفت دهان دو زایعات پوستی سه زایعات چشمی چهار زخم در ناهیه تناسلی پنج درگیری قلب، ریه و دستگاه گوارش 6 ناراحتی‌ها و بیماری‌های مغز و اعصاب و سیستم خونی تو پزشکی جدید در داخل و خارج کشور مطالبی بیان می‌کنم بعضی از دکترها مثلا مثل دکتر جوکار سه تا دارو می‌داد مثل سولفا سالازین، مثل نپروکسین، مثل پرد نیزولون. هر ستا داروهاشون، عوارض بدش و سوش بسیار بدتر از بخواد درمان فل جمله کن. میتونید به کتابهای داروشناسی مثل فرهنگ داروشناسی خانواده، صفحات 234، و صفحه 383 و دا... کتاب داروهای جنریک ایران مرجع کامل 2010 صفحه 872 مراجعه کنیم که عوارز سو این داروهای سگانه بیشتر از نفرسانیشه و در خزینه و نوع دارو نما جایی میگیره استیراعی این مالین بنده های خدا بعضی دیگه از متقصصین روماتولوژی در درمان بیماری بهجت نیزو پرد پنج میگه هر روز صبحا چار عدد بخور بعد هر ماه یک بار, هر ماه یک بار به مدت شیش ماه میگن پنج تا دیویس میلی گرمی داروی باکستر این دکستم تا دیویستان میشه هزار میلی گرم از این دارو رو توی سرام میریزن و به بیمار تزریق میکنن این هم کارای این دکترای محترم جدید زیایی گوید در درمان بیماری بهجت که یک نوع روماتیسمه و علائم شیش رو که دونه دونه شمورده حالا در درمان این این مطالب نوشیده و یا خورده شود. یک رب به انار شیرین یا آب انار شیرین تو دهن بگردونن قرغره کنن بریزن بیرون بار دوم میتونه بخوره آفتای دهان شبه میره مال زایعات پوستی و آفت دهان میتونه از جوشانده تخم خرفه جوشانده تخم خرفه بقلت زهرار، بقلت المبارکه، بقلت لینه میتونه اونا تو دهان ما مومنان بریزه بیرون آفت دهان خوب میشه مال زایعات پوستیش هم میتونه تو جیره قضایش اصل جوان بگذره میتونه صبحش تو ناشته چی بخوره همونجا؟ شیر عسل بخوره ولی اصلش عسل چی باشه؟ گوند سومی که زایات چشمی بود میتونه اهلیجات در اثر پرونانده هر روز یه قاشق مراب بخوری از این مخلوط بخوره مخلوت هلیله سیاه، هلیله زرد، هلیله کابولی مال هلیله زرد و هلیله کابولیش حسش نخوره که سمیه. همچنین آب زردک یا جزر یا آب هویج بخوره که اون ضایعات چشمی ام از بین بره خوب بشه مال اون زخم در ناهیه دستگاه تناسلی از حیث ماساژ دادن روغن بنفشه طبی بماله از حیث خرد و خوراک مربای به یا آب به با یا سیب یا آب سیب با اصل استخد دوست بخوره مشکلات در ناهی دستگاه تناسلی و زخمش برطرف میشه مال اون درگیری قلب و ریه و گوارشش میتونه استفاده کنه از آب پرتقال و همچین استفاده کنه از خورمای بعد از غذا آب پرتقال بین غذا خورمای بعد غذا تو بحثای سیستم خونیشو رو، اعصابشو، مغزشم که باز قبلش گفتم دیگه تکرار نکن هم مسش اصل گذاشتیم هر دو نوعش چه اصل گوون چه اصل استخ هم مومنا خرما گذاشتیم؟ هم پرتقال در بین غذا ذریع به جذب آهن از غذای خورده شده بالا میره چون 3 میلی گرم ویتامین C در بین قضا توان بدن رو در جذب آهن از این قضایی که خورده ده برابر نکنه حالا یک پرتقال شیرین مثلا 100 گرم حدود بین 47 تا 50 میلی گرم ویتامین C داره چند تا 3 تا میشه به همین تنابع به تصاعد حسابی میره بالا مثلا 6 میلی گرم میشه 20 برابر 9 میلی گرم ویتامین 3 بخوری بین غذا میشه 30 برابر گرفتین مومنان؟ اینم مال این بیماری های افراد مختلفی بودن که سآلشون بیماری بهجت بوده بعضی هم اینجا اسماشون نوشتم بعضی هم تو کاغذ دیگه است. شماره تلفوناشون هم هست که دارم به این درمان عمل میکنن از این قرصه شمیه هایی هم دارم بینیاز میشن اللهم صل على محمد وعلى محمد اعجل فرجهم